أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْغَوَارُ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا اگر محتوا و مضمون منبرهای ما، مددایی های ما، حیعتهای ما، نوخانی ما محتوا و مضمون شایسته‌ای باشه هیچ وسیله نمی با اونها مواجهه و مقابله بکنه یعنی کاملا منحصر به فرده ببینید فرصت اینها آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند؟ و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشندند بدتر از از دست دادن این فرصت این است که ما اون رو در راه بد مصرف کنیم بد دلو نعمت الله را اگر خدای نکرده جلسات ما جلسات وحدت شکن باشد این فرصت از دست داد. نعمت را تبدیل نعمت کردیم را... به نقمت باید تکرار بارها ما بار تکرار گفتیم آدم های بارها تکرار آگاه و مطلع از اوضاع جهان و جهان اسلام این رو براشون مثل روز روشنه که امروز اختلافات مذهبی در میان مسلمانان یک برگه ایست در دست دشمنان ما یک شمشیر در دست دشمنان ما همین اختلافات مذهبی است علنی کردن اختلافات سریح کردن مخالفت‌های اعتقادی، به زبان آوردن مطالبی که کینه ها رو در می یکی از وسایلی است که دشمن ما از این بیشترین استفاده رو داره میکنه حالا ما جوری عمل بکنیم که این مقصود دشمن برآورده بشه، این بد دلونه الله کفرن است. تو جلسات نباید کینه ورزی‌های مذهبی رو زیاد کرد. اینو چقدر باید تکرار کرد بارها تکرار, تکرار کردیم شما اینجا یه شعری بخونید امروزم که ویدئو و اینترنت و وسائل گوناگون، اکس و تفصیلات بره در فلان نقطه چهار تا آدم جاهل متعصب رو تحریک کنه بی اندازه به جان زن و بچه بی خون اینها رو بریزه مراقب باشید این چیزها رو اینی که بنده این همه اصرار می کنم تحکید می کنم برای اینکه این اختلافات مذهبی و توافی رو کمرنگ کنید این برای اینه